مصنوی معنوی مولوی برنامه 168 بعد مکس ایشان متواری در بلاد چین در شهر تختگاه و بعد دراز شدن صبر بی صبر شدن آن بزرگین که من رفتم الودا خود را بر شاه ارضه کنم اما قدمی تونیلونی مقصودی او القی رسی کفعادی سمه یا پای رساندم به مقصود و مراد یا <تصفيق> سر هم همچو همچدل از دست آنجا و نصیحت برادران او را سود ناداشتن یا عازل العاشقین دعفعتن ازل لها الله و کیف ترشدها الى آخرهی آن بزرگین گفت ای اخوان من زنتظار انتظار آمد بلب این جان من لاعبالی گشتم صبرم نماند، مرمرا این صبر در آتش نشاند طاقت من زین سبوری تاق شد واقع من عبرت عشاق شد من زجان سیر آمدم اندر فراق زنده بودن در فراق آمد نفاق چند درد فرقتش بکشد مرا سر ببر تا عشق سر بخشد مرا دین من از عشق زنده بودن است زندگی زینجان و سر ننگ من است تیغ هست از جان آشق گرد روب زان که افتاد مها و زنوب چون غباره تنبه شد ما هم بتافت ماه جان من هوای صاف یافت عمرها بر تبل عشقت ای سنم ان فی موتی حیاتی میزنم دعوی مرغابی کرده است جان که از طوفان بلا دارد فغان بَط را زشکستن کشتی چغم غم کشتیش بر آب بس باشد قدم زنده زین دعوی بود جان و تنم من از این دعوی چگونه تن زنم خواب می بینم ولی در خواب نه مدعی هستم ولی کذاب نه گرمرا مرا صد بار تو گردن زنی همچو برفروزم روشنی آتش هر خرمن بگیرد پیش و پس، شبروان را خرمن آن ماه بس. کرده یوسف را نهان و مختبی، هیلت اخوان یعقوب نبی، خفیه کردندش به حیلت سازیه، کرد آخر پیرهن غم مازیه. آن دو گفتندش نصیحت در سمر که مکن زختار خود را بی خبر. هین منه بر های ما نمک. هین مخور این زهر بر جلدی و شک. جز به تدبیر یکی شیخ خبیر چون روی چون نبودت قلب بسیر. وای آن مرغی که نارویده پر برپرد بر اوج بر و افتد در خطر عقل باشد مرد را بال و پره چون ندارد عقل عقل رهبره یا مزفر یا مزفر جوی باش یا نظرور یا نظرور جوی باش بیز مفتاح خیرت این قرع باب از هوا باشد نه از روی سواب در دام می میبین از هوا و از جراحت های همرنگ دوا مار ایستاده است بر سینه چومرگ در دهانش بحر سید اشگرف برگ در هشایش چون هشیش او پاست مرغ پندارد که او شاخ گیاست چون نشیند بحر خور بر روی برگ در فتد اندر دهان مار و مرگ کرده تمساح دهان خیش باز گرد دندانهاش کرمان دراز از بقیه خور که در دندان شماند کرمها رویید و بر دندان نشاند مرغکان بینند کرم و قوت را مرج پندارند آن تابوت را چون دهان پر شد زمرغ او ناگهان در شان و فرو بندد دهان این جهان پرز نقل و پرزنان چون دهان باز آن تمساهدان دان بحر کرم و تومه ایروزی تراش اسفانه فن دهر ای من مباش روبه افتد پهن اندر زیر خاک بر سر خاکش حبوب مکرناک تا بیاید زاغ غافل سوی آن پای او گیرد بمکر آن مکردان صد هزاران مکر در حیوان چو هست؟ چون بواد مکر بشر کو است. مصحف در کف چوزین العابدین خنجر پر قهر اندر آستین گویدت خندان که ای مولای من در دل او بابل پر سهر و فن زهر قاتل صورتش شهدست و شیر هین مراو به صحبت پیر خبیر جمله لذات هوا مکرست و زرق سور تاریکیست گرده نور برق برق نور کوته و کذب و مجاز گرده او ظلمات و راه تو دراز نه به نورش نامتانی خاندن، نه به منزل اسب دانی راندن. لیک جرم آنکه باشی رهن برق، از تو رو اندر کشد انوار شرق. می مکر برقت بی دلیل در مفازه مزلم شب میل میل. برکوه افتی گاه و در جوی افتی، گه بدین سو، گه بدان سوی افتی. خود نبینی تو دلیل ای جاه جو، ور ببینی رو بگردانی از او. که سفر کردم در این ره شست میل، مرمرا گمراه گوید این دلیل، نه هم من گوش سوی این شگفت زمر او راهم هم ز سر باید گرفت من در این ره عمر خود کردم گرو هرچه باد آباد ای خاجه برو راه کردی لیک در زن چوبارق عشر آن ره کن په وحی چو شرق. زن لایغنی من الحق خانده ای و چنان برق ز شرق مانده در کشتی ما ای نجند. یا تو آن کشتی بر این کشتی ببند و چون ترک گیرم گیر چون روم من در توفیلت کور وار کور با رهبر به از تنها یقین زان یکی ننگست و صد ننگست از این می گریزی از پشه در کشدومه می گریزی در یمه تو از نمه می گریزی از جفاهای پدر در میان لوتیان و شور و شر می گریزی همچو یوسف زندوه تازه نرته نلعب افتی در چه در چه افتی زین تفرج همچو او مرترا لیک آن عنایت یار کو گر نبودی آن به دستور پدر بر نیاوردی ز چه تا هشت سر آن پدر بهر دل او ازن داد گفت چون این است میلت خیر باد هر زریر که از مسیح سرکشد او جهودانه بماند از رشد قابل زو بود اگر چی کور بود شد از این ایراز او کور و کبود گویدش عیسی بزن در من دو دست ای اما کهل عزیز با من است از من ار کوری بیا بی روشنی برقمیس یوسف جان برزنی کاروباری که ترسد بعد شکست، اندران اقبال و منهاج ره است. کاروباری <العابو> که ندارد پا و سر، ترک کن، هی پیر خر، ای پیر خر. غیر پیر استاد و سرلشکر مباد، پیر گردون نه، ولی پیر رشاد، در زمان چون پیر را شد زیر دست، روشنایی دید آن ظلمت پرست. شرط تسلیم است، نکار دراز. سود نبود در زلالت ترک تاز. من نجویم زین سپس راه اسیر، پیر جویم، پیر جویم، پیر. پیر پیر باشد نردبان آسمان تیر پرران از که گردد؟ از کمان نز ابراهیم نمرود گران کرد با کرکس سفر بر آسمان از هوا شد سوی بالا او بسه لیک بر گردون نپرد کرکسه گفتش ابراهیم ای مرد سفر کرکست من باشم اینت خوبتر چون من سازی با بالا نردبان بان بی پریدن بر روی بر آسمان آنچنان که می روید تا غرب و شرق بیز زاد و راهله دل همچو برق آنچنان که می رود شب زختراب حس مردم شهرها در وقت خواب آنچنان که عارف از راه نهان خوش نشسته می رود در صد جهان گر دستش چونین رفتار دست این خبرها زانبلایت از کی است این خبرها وین روایات محق، صد هزاران پیر بر وی متفق، یک خلاف نی میان این اویون، آنچنان که هست در علم زنون، آن تحری آمد اندر لیل تار، وین حضور کعبه و وست نهار، خیز ای نمرود پر جوی از کسان نردبانی نایدت زین کرکسان اقل جزوی کرکس آمد ای مقل پر او با جی فخاری متصل اقل عبدالان چو پر جبرایل میپرد تا زل صدره میل میل باز سلطانم گشم نیک و پیم فارغ از مردارم و کرکس نیم ترک کرکس کن که من باشم کسد یکپره من بهتر از صد کرکسد چند بر امیا دوانی اسبرا. باید اصطا پیشراو و کسب را. خیشتن رسوا مکن در شهر چین. ای جو خیش از وی در مچین. آن چی گوید آن فلاتون زمان، هین هوا بگذار و رو بر وفق آن. جمله می گویند اندرچین جد بحر شاه خیشتن که لم یلد. شاه ما خود هیچ فرزند نزاد، بلکه سوی خیش زن را ره نداد. هر که از شاهان از این نوعش بگفت، گردنش با تیغ بران کرد جفت. شاه گوید چونکه گفتی این مقال یا بکن ثابت که دارم من ایال مرمرا دختر اگر ثابت کنی یافتی از تیق تیزم ایمنی ورنه بی شک من ببرم تو برکشم از صوفی جان دلقتو سر نخواهی برد هیچ استیر تو ای بگفته لاف کذب آمیغ تو بنگر ای از جهل گفته ناحق پرز سرهای بریده خندقه خندق از قار خندق تا گلو پرز سرهای بریده زین گلو جمله در کار این دعوا شدند، گردن خود را بد این زدند. هن ببین این را به چشم اعتبار، این چونین دعوه میاندیش و میار. تلخ خواهی کرد بر ما عمر ما، کی بر این می دارد عیدادر تو را؟ گر رود صد سال آن کاگاه نیست بر اما آن از حساب راه نیست بی صلاح در مراو در معرکه همچو بی با کن مراو در تهلکه این همه گفتند و گفت آن ناصبور که مراز این گفته ها آید نفور سینه پر آتش مرا چون منقل است. کشت کامل گشت وقت منجل است. صد را صبر بود اکنون آن نماند. بر مقام صبر عشق آتش نشاند. صبر من مرد آن شبه که عشق زاد. در گذشت او، حاضران را آمر باد. ای محدس از خطاب و از خطوب، زان گذشتم آهن سرد مکوب. سرنگونم، هی رها کن پای من، فهم کو در جمله اجزای من، اشترم من تا توانم میکشم. چون فتادم زار با کشتن خوشم. پر سر اگر صد خندق است پیش درد من مزاح مطلق است. من نخواهم زد دگر از خوف و بیم این چونین تبل هوا، زیر گلیم من عالم اکنون به صحرا می زنم یا سراندازی و یا روی سنم حلق کن نبود سزای آن شراب آن بریده به به شمشیر و زراب دیده کن نبود وصلش در فره آنچنان دیده سپید و کور به. گوش کن نبود سزای راز او برکنش که نبود آن برسر نکو. آن دسته که نبود آن نساب آن شکسته به به ساتور قصاب. آنچنان پای که از رفتار او جان نپیوندد به نرگس زار او آنچنان پا در حدید اولاتر است آنچنان پا عاقبت درد سر است بیان مجاهد که دست از مجاهده باز ندارد، اگرچه داند بستت عطای حق را که آن مقصود از طرف دیگر و به سبب نوع عمل دیگر بدورساند، که در وهم او نبوده باشد. او همه وهم و امید در این طریق معین بسته باشد، حلقه همین در میزند، بو که حق تعالی آن روزی را از در دیگر به دور رساند که او آن تدبیر نکرده باشد و یرزقه من حیث لا یحتسب العبد یدبر و الله و بود که بنده را وهم بندگی بود که مرا از غیر این در برساند اگرچه من حلقه این در میزنم. حق تعالی او را هم از این در روزی رساند. فل جمله این همه درهای یک سرای است. مع تقریره یا در این ره آیدم آن کام من یا چبازایم زره سوی وطن بو که موقوف است کامم بر سفر چون سفر کردم بیابم در هزار یار را چندین بجویم جد و چست که بدانم که نمی بایست جست آن معیت کی رود در گوش من تا نگردم گرد دوران زمان، کی کنم من از معیت فهم راز جز که از بعد سفرهای دراز حق معیت گفت و دل را مار کرد تا که عکس آید به گوش دل نتر چون سفرها کرد و داد راه داد بعد از آن مهر از دل او برگشاد چون خطاأین آن حساب باسفا گرددش روشن ز بعد دو خطا بعد از آن گوید اگر دانستمی این معیت را کیو او را جستمی دانش آن بود موقوف سفر، ناید آن دانش به تیزی فکر. آنچنان که وجه وام شیخ بود، بسته و موقوف گریه آن وجود. کودک حلوایی بگریست زار، تخته شد وام آن، شیخ کبار گفته شد آن داستان معنوی پیش از این اندر خلال مصنوی در دلت خوف افگند از موضعی تا نباشد غیر آنت متمع در تمع فایده دیگر نهد وان مرادت از کسی دیگر دهد ای تما در بسته در یک جای سخت کایدم میوه از آن عالی درخت آن تمع زانجا نخواهد شد وفا بلز جای دیگر آید آن عطا آن تمع را پس چرا در تو نهاد چون نخواهد زان طرف آن چیز داد از برای حکمت و صنعت نیز تا باشد دلت در حیرت تا دلت حیران بود ای مستفید که مرادم از کجا خواهد رسید تا بدانی عجز خیش و جهل خیش تا شود ایقان تو در غیب بیش هم دلت حیران بود در منتجع که چرو یاند مصرف زینتمع تمداری روزی در درزی تاز خیاطی بری زر. تازی. رزق تو در زرگری آرد پدید که ز وحمت بود آن مکسب بعید پس تمه در درزی بحر چه بود چون نخواستان رزق آن جانب گشود بحر نادر حکمت در علم حق که نبشتان حکم را در ماسبق نیز تا حیران بود اندیشه ات، تا که حیرانی بود کل پیشه ات. یا به سال یار زین سیعام رسد یا زراهی خارج از سیع جسد من نگویم زین طریق آید مراد می تپم تا از کجا خواهد گشاد سربریده مرغ هر سو میفتد تا کدامین سو رهد جان از جسد یا مراد من براید زین خروج یا ز برج دیگر از زات البروج